در باره تکلفات بعد از حج که در جابه ما مرسوم هست بعض مردم پول حج دارن ولی پول بعد از حجو ندارن حالا اینکه بعضی میره حج میکنن اما ترسشون اینه که میگه میتونم درم مکه برگردم 5-6 میلیونی دارم اما ارزون ترین حجو میتونم انجام دارم اما با وقتی برگشتم برای همه بعد حجی بیارم حالا منشالل اگر خانواد پر جمعیت باشه ازدواج کردم برای کل لباس برای دامادها لباس برای خواهران لباس برای بسلا عروس ها لباس علی 5 6 میلی خونجا برای حج رفته 20 میلی هم اون دیگه اوارزاتشن آی اینها جا جایز نیستن را سنگین نکونید خیلی ها حاج نمیرن که وقتی برگشتی خون کوچی که جا نمیشن حالا مردم کجا بشینن خیلی ها میرن اونجا که الان هواپیما هم کل باری که هواپیما با میذاره سی کیلو هست در کل هواپیماهای سعودی حجاج بر میگردن این کیلو بیتون داخل بارت بذاری. حالا سی کیلو آب بذاره، 30 کیلو توفی بذاره، این 30 کیلو خورما این 30 کیلو شلوار بس یا خود اسباب خودش داخلش بودن بذاره. مگر که رشوه بده با همون های هواپیما که با درول با, با خیانت سوار بشه. حج کرده خیانت میکنه سوار میشه. یا این یا باید با, با دلار اون هزینه و کراهاکمه خیلی زیاده و با دلار حساب میکنن حالا خیلی قیمت زیادی رو میگیره کل اون وسائلی خریده ارزش وسایل پایین تر از همون کرائی میشه کنجا پرداخت میکنن این حج اینجوره نیست چرا حج سنگین میکنه بزاری مردم برای حج کسی اگر هم داره اما تخصیب نکنه این رسم را بردارید اگر زیاد هم میدی آب زمزم بیاری دو خرمه مدینه بیشتر نه این همه تکلفات آوردن جای نماز جای نماز نیاوران که استفاده نمی‌شه تصفیحاتی نیاوران که همونجا که بلند شد اون کندیس نمی‌شه تصفیحاتی تقسیم میشن از جای بلند نشوده کندی میونجا میاندازه میره خیلی ها اونجا می‌ذارن بلند میشن می‌گیرن پس چرا این همه هزینه می‌کونیم این پول خرج می‌کنی نه کسی تصفیه رو استفاده می‌کنه وان کسی که از وسایل درست استفاده میکند، اینها رو انجام نمیکند. بعد دشحالی بر بیگرددی، با دعا بر بیگرددی، با نورانیت بر بیگرددی، با اون تعریف از حرامین بر بیگرددی، تأثرات تا حرامین بر بیگرددی. اینها خیلی شیرینه. برای مردان تعریف کن از بیت الله، تعریف کن از ساره عرفان، تعریف کن از مشعل الحرام، تعریف کن از مدینه منبره. اینها رو تعریف کن ها مردون لذت هم میبرند و ناراحت هم نمیشن. این رسوم را بر بده همه راضیان هم که رسم نباشه. همه مردم راضی هم اینها نباشم و همه مردم منتظر هذیه هستن. این مصیبته اون که داره میره خودش رازیه که نباشه. اون که هم میخواد آینده هم بره راضیه که رس میگه قبل از یک من برم این رسومات تمام بشن تا من که میرم دیگه من دست خالی بر بگردم تا هزینه پایین بیام. اما خود اون شخص هم منتظر است که اقا وقتی برگ حالا بابرادر برای چی آورده؟ نگاه می کنید میر و تا بیرو میارد دست خالی میارد دست فر میارد این تمها رو بروداری این داری نگاه می اشراف نفس هست و این رو جائز نیست ها.